فرق جوهری ندارن یعنی در عین یعنی اونجا هم یک کثرت در عین وحدت داریم یعنی در اینی که شما قمی میبینید مثلا نوزده تقرير این روح تمام یا اکثر این تقاریر فرق جوهری با یکدیگر نداره که اینو ان امروز چون اون جلسه خیلی فرصت نشد که بست بدم امروز اینو بیشتر توضیح میدم و البته خب نقدی هم خواهم داشت حالا عرض میکنم نقدم ناظر به چی چون حالا میدونم اینجا مباحثی میخوام دیگه تکرار اونها نباشه درنگی در عدله عقلی یا درنگی در عدله نقلی من نمیخوام دوباره تکرار بکنم برخی مطالبی که ممکنه اون بزرگان یا اساتید مطرح فرموده باشن ولی سعی میکنم مطالبی بیارم که حدس میزنم که اونجا احتمالا بهش پرداخته نشده لکن اونجا من یه تعلیقی داشتم یه حاشیه ای داشتم و او این بود که مثلا وحدت سنخی وجود یا تداخل وجود نظر برخی اساتید معاصر یا وحدت حکمی وجود که برخی مطرح کردن که اگر باز به ذهن شریف دوستان باشه اگر بودن در اون جلسه وحدت سنخی وجود به این معنا بود که ما بگیم آقا هم خداوند سبحان و اشیا در مفهوم وجود مشترکن یعنی هر دو هم ذات مقدس حق هم ما سوالله مخلوقات همگی حقیقتن موجودن حقیقتن متصف به وصف عقلی وجودن خب میشه وحدت سنخی، وحدت سنخی به همین معنا ما عرض کردیم این دیگه وحدت وجود نیست یعنی وحدت وجودی که یک گروه خاصی بهش پایبندن بندن و او رو مطرح کردن و ازش دفاع کردن به انهای مختلف خب که دیگه اون نیست که اون به وضوح قائل به تبایون و کثرت موجودات یعنی میگه یک وجود داریم خداوند سبحان به عنوان ذات مثلا قیومی واجب الوجود واحد ازلی چه و دیگرانی که حقیقتا مثلا خداوند سبحان اگر اینو قائل باشن دارم معرض میکنم اونها رو ایجاد کرده لکن هر دوی این حقایر واقعا موجودن یعنی چی یعنی از هر دوی این حقایر ترد عدم شده و هستن واقعا هستن یعنی الان این کتاب این محفل ما بنده شماها هستیم خداوندم حقیقتا هست با این وحدت وجود خب همه متکلمان تقریبا این معنا رو قبول دارن خب کره زمین کسی ظاهرن اکثری میشن وحدت وجودی دیگه با این معنی این وحدت وجود نیست که بنده من الان یه دیگه ارائه میدم بندم وحدت وجودی هم به چه معنا به این معنی که قائلم خداوند سبحان حقیقتا فقط او واحده ماث والله مثلا واحده حقیقی نیستم در یک عنوان عام مثلا فرشون او حقیقتا واحده وحدت وجود. وجود واحد فقط اوس مثلا وحدت وجود الان خب میالان تقریر رابطه وحدت وجود نداره ماصوار قبول داری بله واقعا اونها رو خداوند ایجاد کرده و ماصو الله حقیقتاً غیر حقا؟ بله اونی وحدت وجود نیست که اما بقیه تقریرها این تداخل وجود هم به شرحیزن یعنی تداخل وجود هم قائل به اینه که خداوند سپان حقیقتا موجوده ماسه والله حقیقتن موجودن خداوند اونها رو ایجاد کرده لکن در موتن وجودی خودش ولی دو وجودن به تبیر اون استاد بزرگ که این نظریه رو خوب تبین فرمودن معتقدن که اگر تمام اینها خداوند معدوم بکنه چیزی از خدا کم نمیشه ربطی به خدا ندارن و هم نمیتونه ایجاد کنه واقعا نمیتونه معدوم بکنه لکن چون خداوند نهایته اینها رو در متن وجودی خودش ایجاد میکنه ولی دو وجودن حقیقتا هیچ نهوه عینیتی بین خدا و خلق نیست خب کسی این رو هم قائل باشه حالا ممکنه بین نظریه به این نظریه نظر حقیق اشکالات جدی وارد باشه اما این وحدت وجود نیست واقعا دیگه اصطلاحا و آدم میتونه خب هرچی بگه وحدت وجود اما اون 15 حالا 14 کمتر بیشتر تقریر چرا همش وحدت وجوده ظاهرا هم اختلاف دارن با هم دیگه ظاهران ولی عرض میکنم روح تمام اون تواریر هم به یه چیز برمیگرده چگونه این حالا که بیشتر توضیح میدم چون تا اینجا رو جلسه قبلم ارز عرض کرده بودم ببینید اون وحدت تشکیکیه که اخوند ملا صدرا مطرح کرده در آثار متعدد و متکثری که داره این وحدت تشکیکی و وحدت شخصیه ای که مثلا عرفا مطرح کردن وحدت شخصیه ذات مظاهر وجود منحصر در حق است ما سوا میشن ظهورات و تجلیات حق خب این دو تقریر باز سال من اینه با یکدیگر فرق جوهری و واقعی و حقیقی دارن جواب نه چرا بر اینکه. خود جناب ملا صدرا وقتی میخواد نظریه خودش رو تقریر بکنه بیانش چیه میگه آقا وقتی من میگم مراتب یعنی چی یعنی، یک وجود، فرد وجود باز یکیست فرد وجود یکیست ما افراد وجود که جدا جدا جدا باشن نداریم به هیچ وجه خب، ماسوا چی از نظر ایشان؟ ماسوا میشن روابط، وجود رابط وجود رابط چیه از نظر ایشان؟ وجود رابط یعنی وجودی که جلسه قبلم توضیح دادم اصلا ذات نداره که شما بتونی بهش اشاره کنی یک وجود رابط اصلاً حکم نداره یعنی هر حکمی شما به وجود رابط بار بکنی اولا و به ذات برای وجود مستقله مال این نیست چون ربطه این این خودش هیچ اینیتی هویتی تشخصی در قبال وجود مستقل که وجود حق باشه نداره من چند تا عبارت الان بخوانم من یه مقداری مطبم واضح بشه ببینید ان رابطه لَذَا تَلَهَا اصلا مُلا صدره اصفار جلد یک صفحه 143 لَذَا تَلَهَا اصلا کَلْ مِرْعَات وقتی میگن مِرْعَات یعنی صورتی که تو مِرْعَات ها نه خود اون از کنم که خدا آینه ای که عرف میگه آینه، نه اون تصویری که تو آینه است، اون تصویری تو آینه ذات نداره یعنی حقیقتا چیزی تو آینه نیست بهترین مثال هم خود بزرگانه عرفان توضیح دادن که همین مثال آینه است دیگه خدایا خدا یا اون شخصیت معروف عرفانی که میگه خدا ما خدا رو ممنونیم که بالاخره آهن رو خلق کرد، انظر نره حدید و اینها، عین الگذات او رو خالق کرد که ما بالاخره بتونیم دردمون رو به مردم بگیم ما چی میخوایم بگیم این آینه و اینا بهترین مثال برای ما که بتونیم تبیین بکنیم ولی قریب غریبی همش مزمونی کلمرئات اللاتی لا لون لها ولا حقیقه لها اصلا هیچ هویتی هیچ حقیقتی واقعیتی در قبال صاحب صورت نداره تمام حقیقت مال صاحب صورت یعنی بنده که جلو آینه وای میسم من حقیقتم اون تصویر تو آینه هیچ چی نیست. رابط یعنی این. رابط یعنی هیچ شعن استقلالی نداره. عین و ربطه نه یعنی یه وجودی داره مثلا در وجودش وابسته به ایجاد خداست. که حرف عرفا جناب ملا صدرایی است که متکلماست. این حرف سطحی از نظر اونها. که بله خداوند رو ایجاد کرده من در کدوث و بقا وابسته به ایجاد الهی هم خب اینی که این حرفی که همه متکلمون قبول دارن نوش. مشکل نداره که ما هم قبول داریم. همه عوام هم قبول دارن. اما اینی که اینها میگن خیلی فراتر از اینه ذات نداره یعنی این شعن اونه حیث اونه تجلی اون همون بعد حالا من عبارات میخونم که میگه من که میگم تشکی که در وجود تشکیک مراتب توضیح میده خودش منظورم چیه یعنی خودش عبارت سریح داره بعد توضیح میده در جای دیگر که میگه اصلا شما میگی وجود رابط وجود مستقل خب این وجود رابط و وجود مستقل این اشتراک معنوی داره یعنی حقیقتا موجودون حقیقتا موجودون جواب نه اشتراک لفظیه من ببین میگم وجود این اشتراک لفظیه ببینید تعبیر رو یعنی حقیقتا وجود نداره چون ذات نداره هرچه هست اوست عارف هم عرفا همین دیدت عارف عرفا همین دیدی هر چه هست اوست این میشه رابط، این میشه نسبت این میشه فانی دروحی میشه هیچی من مثالی که عرض میکنم این روشن ترین مثال این باشه برای وجود رابط ببینید الان دست من نسبت به بدن من جلسه قبلا هم عرض کردم این وجود رابط داره یعنی چی یعنی دست من در قیاس با بدن من هیچ استقلالی از بدن من نداره رابطه یعنی این یعنی ذاتی در قبال بدن من نداره خود بدن من هیصی از هیسیات بدن منه هی. حالا آقای این مثال نفس و صبر ذهنی نفس رو می‌زنن اونم هم همینه صبر ذهنی نفس هم رابطه در نفسه یعنی چی یعنی هیچ هویتی ورای نفس نداره شما تصوراتی که دارید هیچ هویتی اینها ورای نفس خودتون ندارن دو وجود حقیقتا نیستن یک وجودن. حتی ملاصدره در بحث جوهر و هم نهایتا نهایتاً همین رو میگه. میگه عرض محمول به زمینه نیست نسبت به جوهر. که بو علی میگفت میگه عرض از شعون خود جوهر حقاً با مایع بودن آب، مایع بودن آب چیزی ورای خود آب نیست. کمیت آب که عرضه چیزی ورای جوهر آب نیست آب که به تعبیر برخی اساتید شما بتونی آب رو توی جیبت بذاری، رو توی جیب بذاری. انفصال ندارن در خارج یعنی به این یک وجود موجوده حالا ماستوالله هم از این بالاتر دیگه این میشه وجود رابطی صفت میشه وجود رابطی اینا که رابطن اصلا ذات ندارن حالا شما با صفت و رنگ رو میتونی در ذهنت لحاظ بکنی حجم میتونید در ذهن تصور بکنی رابطه اصلا تصورش نمیتونی بکنی الا فانیان در اون موجود مستقل مثال هم که میزنن هم معانی حرفی عرض کنم که ادبیات هم سال زالک متردی شما وقتی نگید زید قائم است این است هیچ هویتی چیه مستقلا از موضوع محمولش نداره یا شما میگه حسن و حسین این و رو شما وقتی تصور میکنی و خودش استقلال نداره تو فهم این فانی در چیه طرفینش، طرفین ربطه حالا ما سولا عین همون ربطن عین همون حرفن هیچ هویتی ورای اون نداره سر تا پا ربطن سر فنان سر نیستیان در قبال او اما نیستیم هم که گایی میگن عرفا همین دقیقاً میگم هیچ اختلافی وجود اینجا نداره بین حرفی که ملا صدرا گفته اگه دقیق بشیم تو حرفش و حرفی که عرفا فرمودن اصلا خودش هم توضیح داده میگه من این حرفا رو زدم که حرف اونها رو برهانی بکنم دیگه همه زحمت کشیدم اصالت وجودو تبیین کردم اعتباریت ماهیتو رو روشن کردم و بعدی که نشون بدم اینا رابطن در قبال او رابطن یعنی چی یعنی شأن اوان حیث اوان تجلی او و هیچ ذاتی ورای او ندارن. باز نگاه کنید این عبارت رو من دیگه چون یه مقا طولانی از روی خود کتاب بخونم چون یاد داش نکردم این صفحه بسیار نفیس و اصل شما رو معرفی بکنم مم. حالا خودتون باز بهتر می توانید معرفی بکنید خواهش میکنم نه حالا بزرگواریم سلامت باشین بله, بله بررسی تغریرهای مختلف وحدت <تصفح> وجود که این اشارات خطی شیعه اون رو ظاهرم کرده بسیار بادی عرض شریفتون که نگاه ملازه فرمایید، ایشون دارد که تعابیر خود ملا صدر در اسفار ان هذا المسمى بالمعلول اونی که شما بهش میگید معلول لیسه هویتو او ل حقیقت علت المفیزته یا هیچ حقیقت مباین با حقیقت علتش نداره درست مباین نیست یعنی دویت اینجا نیست اسنینیت نیست حتی تا جایی که شما اینجور بگید یکون للعقل ان يشير الالهویت ذات المعلول مع قطع نظر هویت موجده ها که شما بتونید حتی دو نگاه عقلم بگی آقا این آسمان این خدا خدا آسمان رو ایجاد کرد نه اینجور نیست شما آسمان هیچ هویتی نداره الا ربط در خدا مثل همون است شما است ها نمیتونی ورای موضوع و محمولش تصور بکنی از فانی در موضوع و محموله فیکون که بشه که اینجور بشه که کسی اینجور بگه فیکون هویتان مستقلتان فه تعقل احده هما مفیزن آخر و آخره مفازا همچین چیزی ما نداریم مفیز و مفاز نداریم یه ذات مفیز یه ذات مفاز اصلا و وابدا. جز مفیز و شعون او هیچ نیست جز مفیز و حالات و تطورات و هیچ نیست رابط یعنی این حالا نگاه کنید باز این یه عبارت عرض نظر شریفتون یه خیلی روشندتر باز در همون اصفار جلد یک صفحه 71 من اینجا دارم قبلی جلد دو صفحه 299 و مما یجب ان یعلم ان اثباتنا لمراتب الوجودات المتکثره این که گفتیم ما مراتب وجود داریم مواد فکر کنید یعنی یه خدا داریم یه مخلوق داریم اینا دو مرتبه وجودن هم. غیر همان اصلا و ابدا این منظوره ما نیست. حرف خیلی سطحی است که من بخشش رو حذف کردم نقطه اینجا گذاشتم که کسی خواست ببینه من چون نکته مهم اینجاست لا و نافی ما نحنو و به صدده اون چه ما نهایتا میخوایم بگیم که همون تثبیت قول عرفاست هیچ منافاتی با اون نداره. خودش داره میگه هیچ منافاتی نداره. چرا؟ چی شما میخوای اثبات بکنی؟ من اثبات وحدت الوجود والموجود ذاتا و حقیقتن وجود واحد است موجودم واحد است ذاتا و حقیقتن یک وجود بیش نیست یک موجودم بیش نیست تا موشی البته،, البته کسرت رو انکار نمی ولی به همین معنا الان الوجودات و ان تکثرت و تمایزت از تو کسرت بله قبوله همون که تمام عرفه هم کسرت رو قبول دارن حالا عرض میکنیم به چه معنا قبول دارن مهمه الا انها این نکته اینجاست من مراتب تعینات الحق الاول از مراتب تعینات خودشه تعیون، عرف است... چیه؟ همون تجلیات و ظهورات و همین چیز غیر از نیست تعیون خود حقه، ظهور خود حقه نه چیزی ایجاد کرده باشه و ظهورات نور و شؤونات ذاتهی لا انها امور مستقله و زوات منفصله هیچ بریدگی جدایی دویت و مانند اینها نداره حالا این عبارت هم میدونم شاید خسته شده باشید ولی این عبارت هم بخونم راجع به نگاه ایشون به ماهیت که ایشون معتقده هم حرف عرفا نهایتا ماهیات هیچ بهره ای از هستی نداره ظهورات هستی در ذهن در خارج, بح... در خارج فقط یک وجود واحده این تابریشو ببینید. این اسفار جلد دو صفحه سی چهل و چهل یک این جل خداوند وقتی ایجاد میکنه جل میکنه چی جل میکنه یه بحثیست در فلسفه که ماهیت رو جل میکنه وجود رو جل میکنه اتصاف ماهیت به وجود رو جل میکنه بحثیست لا یه تعلق بالماهیت اصلا ماهیت مجهول نیست اصلا اصلا حتی به هم مجعول نیست که بگیم اولا و به وجود مجعوله ثانیا و به طبع ماهیت اصلا و عبدا. فل و علا سرافت امکانه ها درست؟ و بطونه ها من دون این یخرجه الا فضائل فعلیت و الوجود اصلا ماهیات موجود نمیشن خب پس چی؟ فالحکم دقت کنید علالماهیه بلوجود ولو فی وقت من الاوقات انما انما یعنی انما به قول جوادی انما یعنی انما انما نشع من غشاوته على و غلتن في الحكم اینکه دقت نداریم میگه ماهیت هست در خارج آسمان هست زمین هست یکی وجود پیش نیست خب پس چی ماهیت جای دیگه باز اصفار جلد 2 صفحه 341 اون قبلی مَزرت می‌خوام گفتم 340 قبلی جلد 2 287 289 بود پس می‌گم می‌کنم جایی هندی ای الان تقریر چه, متو... چه مدل از وحدت وجود هست ببینید این وحدت وجود تشکییکی که ملا صدرا فرموده بره. و گاهی گفته می‌شود که مثلا این تقریری است در قبال تقریر وحدت وجود عرفا بره. و اینها مثلا فرق اساسی با هم دارن یا فرق‌هایی دارن می‌خوایم عرض بکنیم همونی که شما در مقدمه هم یه اشاره‌ای بشت داشتی اینا روحا هیچ فرق جوهری و واضحی با هم دیگه ندارن تسکیبات خود آخونده اونجا هم گفتم دیگه میگه آقا اینکه من میگم مراتب دارن همون حرفی است که عرفا دارن که تایاناتش و فرانکی نه که واقعا دو وجود باشن حقیقتا حالا عرض میکنم چرا نمیتونن اصلا قالب تغییر دیگری اصلا بشن آقای اونه عرفا حالا عرض میکنم اون ریشه عرض نکته چیه یا مثلا جای دیگه دارین عبارت آخرش که فلان از اینجا میخوانم ان الماهیات امکانیه امور ادمیه امر ادمی است امر وجودی نیست ماهیت کن در خارج باشه نیست از اون نبودها از اون نیستها ها انتزاع میکنه ذهن واقعیت خارجی نداره به معنا ان خودش حالت معنا میکنه به معنا ان ها غیر موجوده خب نگاه کنیم لا فی حد این توضیح میدم لا فی حد انفسها به حسب زباتها ولا به حسب الواقع توضیح اینه اجاز شما میگه آقا ماهیت من حیث و هیهیه هیه آره حقیقتی ندار خودش باشه و خودش لا موجوده لا معدومه ولی چرا دیگه وقتی سبقه وجود گرفت خدا ایجادش کرد به تبع وجود دیگه حقیقت پیدا میکنه یه نگاه اینه ممکنه برخی از معاصران همینو بگن قال به اصالت وجودم باشن مثل جناب استاد فیازی زی میگن بله اونی که حقیقتا اصیله وجوده ولی ماهیت هم حقیقتاً در خارج به تبه وجود موجوده واقعا سیب در خارج از به تبه وجود تا وجود نباشه سیب نیست ایشون میگن این حرفا نیست ماهیت مطلقاً واقعیت نداره نه فی حد انفسش یعنی نظر به ذاتش بکنی با عقلت ماهیت سیب رو در نظر بگیری نه درش ببینی نه آدم رو درش ببینی منحیث و هیهیه میگه خب این که معلوم اعتباریه اینه همه گفتن اعتباریه هیچ کس میگه این حقیقیه میگه نه نه تنها اونجوری به حسب زباتها ولا به حسب الواقع در واقع ما ماهیت نداری اصلا با ماهیتی نیست لئنه ما لا یکون وجودن و موجودن فی حد نفسه لا یمکن ان یسیرم موجودن به تأثیر غیر و افاظته چیزی که نظر به ذاتش هیچ وقت در هویتش حقیقتش، واقعیتش وجود نمیتونه نفوذ بکنه خدا چجوری میخواده ماهیت وجود بده؟ اصلا ماهیت یعنی وجود نه، نوجود هیچ وقتی موجود نمیشه چون هر چیزی بخواد موجود بشه باید وجود تو ذاتش بیاد ماهیت هیچ وقت وجود در ذاتش نمیاد بس ماهیت ازلن و ابدان ما شمت طرف اورفاست رائحه الوجود اعیان ثابته ما شمت هیچ وقت موجود نمیشه اون چه موجوده حقیقتا فقط ذات وجوده که ازلن و ابدان هست ما سوا معدومن. حالا ببینید همین عبارت گوی با بیان وجود رابط که ملا را میگه کوی ببیانی که عرفا میگن نسب میگن ماث و الله روابطن باز همینه گاه میگن ماث و ماهیتن ماهیتن یعنی چی یعنی هیچ بهره ای از هویت ندارن ظهوراتن گاه میگن ماث و الله یعنی چی دوباره معدوما یعنی به عنوان یک موجودی درقبال وجود حق معدوما مولا صادرم گفت دیگه به معنی موجود در حق معدوما گاه میگن موهوما موهوما دوباره یعنی چی یعنی در قبال حق اگه تو فرض بکنی میشه وهم وهمی که خیال میکنه یه خدا داری خدا آمده درخت ایجاد کرده، خورشید ایجاد کرده، این وهمه صورت تو آینه است، اونی که حقیقتن ها صاحب صورته، غیر از او هیچ نیست پس، تمام این تقریرها همونگونه که جلسه قبلم ارزی کردم به یک حقیقت برمیگرده و اینکه یک وجود بیش نیست و خداوند صبحان اقلا از نگاه آقایان محال است چیزی را چیه؟ غیر از خودش خلق بکنه به عنوان خلقی که لامنشه یه چیزی رو که اصلا غیر خودش کاملا ایجاد بکنه این در عرف عرفان مطلقا قابل پذیرش نیست خب اما اون چه ما میگیم در مقام اثبات من الان میتونم خب بیام عدله آقایان رو بیارم و بعد نقد کنم شاید تا حدودی تکرار بشه بحثایی که احیانا من کنابخیه اساتید. ببینم چون دکتر میخوام ببینم درست متوجه شدم یا یعنی منظور حضرت اینه که وحدت وجود تشکیه فلسفه یعنی نظرتون نظر شخصیتون این سوال یکی ای از عزیزان کارور مجزی هم هست. منظور از از این وحدت وجود تشکیکی فلسفه همان تعریف عرفا از وحدت وجودیه یا متفاوته؟ همون همون. این همونی نیست. همونه. هیچ فرق بله. خب، ارز مظهره شریفتون که اما اون چه ما در مقام اثبات عرض میکنین اینه. ببینید ما با همون دلیلی که متعارف محدثان و متکلمان به برکت روایات معقولی که اذباب یثیر و لهم دفاعن العقول من اینو به جد بهش اعتقاد دارم اینه حالت تعارف و شعار و خطاب و منبر لطیف ترین حد وسط های برهان در اثبات ملاک نیاز مخلوق به خلقت، حدوث عالم غیریت خالق نصفت مخلوق دقیق ترین عدله اقلیه در متن روایات ماست خصوصا روایات چون مواجه هم بوده با احیانا برخی کسانی که قائل به قدم عالم بودن از حالا ابن عبل اوجاها و مانند اینها این حالا ناخاسته برکتی شده که اهمه به سخن بیان و مطالبی رو افاظه بفرماین که حقیقتا دقیق ترین عرض میکنم برای این اقلی در متن روایات ما موجوده الا ما شا اشاره که این ب اما ببینید، اون چه از متن روایات بنده عنوان دلیل عقلی ها استفاده کردم اینه که از برخی اساتید معاصر و دیگرانی که تو طول تاریخ زحمت کشتن اینها رو ارز کنم استیاد کردن و اجتهادی اینها رو بررسی کردن و مطرح کردن بنده استفاده کردن ابتکاری در کار نیست به هیچ وجه ببینید، بحثی که در روایات اینه میگن آقا، منات، ملاک، نیاز، مخلوق به خالق، تجزی، محدودیت و در یک کلمه قابلیت زیاده و نقصانه یعنی چی؟ یعنی هر موجود محدودی چون ما در این که اجمالاً موجود محدودی هست هیچ تردیدی نداریم یعنی اگه بنده یک ایدئالیست محضم باشم خارج از خودم رو انکار بکنم مثلا دیگه نمیتونم که افکار و صور ذهنیمو و اینا رو که انکار بکنم که دیگه اینا قابل انکار نیست دیگه اینا محدوده. زیاد میشن کم میشن طبیعیه زمان بهشون میخوره درستی ام نه خب هر چه زیاده و نقصان پذیره هر چه زیاده و نقصان پذیره محدوده و هر محدودی هم زیاده و نقصان پذیره. این هم قابل انکار نیست و هران چه این گونه است این وصف زیاده و نقصان پذیری وصف کمیاته اولا و بذات این من خواصل کمه که زیاد میشه کم میشه چیزی کمیت نداره معنا نداره بتونی بهش زیاد بکنی بتونی ازش کم بکنی و هر محدودی ذاتن چون حد داره ابتدا داره انجام داره عقل میگه آقا میتونه بیش بشه میتونه کم بشه و قابل تقسیمه تقسیم به چی آغاز انجام این میشه متجزی قابل تقسیمه آغازش غیر از انجام بشه این تقسیمی دیگه این ورش غیر این ورش. این میشه تقسیم یه تحلیل عقلی است خب بعد میگیم آقا با همین نگاه طبق یک بیان میگیم عالم حادثه چرا؟ یعنی ابتدا داره، حادثه یعنی آغاز داره. چرا؟ چون به عمر عالم داره اضافه میشه. به زمان عالم داره اضافه میشه. چیزی که زیاد پذیر زمانش و مکانش قهرن آغاز داره که شما بهش اضافه می‌کنید. چیزی که آغاز نداره چجوری بهش اضافه می‌کنی؟ یعنی حد داره. پس عمر عالم حد داره. البته ما با عقل نمیتونیم بگیم چند سال از عمر عالم میگذره. به هیچ وجه برهان عقلی نداریم، ولی یقین داریم حد داره. خب پس چیزی که حد داره نبوده به وجود آمده سوال اینی که نبوده به وجود آمده یا خود به خود به وجود آمده که بدی حتی العقل اینو انکار میکنه یعنی چی؟ خود به خود که محاله یا نیستی او رو به وجود آورده یعنی منشهش عدم بوده خب اینم شوخیه اینم که محاله پس یک موجودی این رو ایجاد کرده سال بعدی اون موجودی که این رو ایجاد کرده یا اون هم محدود و ابتدا داره یا نه از این دو حال خارج نیست. اگر بگید اونی که اینا رو ایجاد کرده او هم ابتدا داره میگیم آقا ما قبلا اثبات کردیم که هرانچه کل ابت... محدودها ابتدا دارن پس اونم میشه زیر مجموعه همینا بنا شد این مجموعه که ابتدا داره یه موجدی داشته باشه درسته پس او دیگه قهرن چیه نمیشه ابتدا داشته باشه میشه ازلی میشه لا حد دلح. میشه غیر مقداری، میشه غیر متجزی، میشه نه آغاز داره نه انجام داره، ال اول و ال آخر. میشه ال واحد، میشه احد، میشه سمد، لا جوفله و مانند اینا. یا ای همچنان، لَيْسَكَمِسْلَيْشَيْءٍ لَمِيَكَانْ لَهُوْ كُفَوَانْ اَهَدٍ و خود به خود یک کم بیشتر نمیتونه باشه. چرا؟ چون دویت، تعدد همش فرع بر حد. چیزی که حد نداره، مقدار نداره، اجزا نداره، کمیت نداره، خود خب دو نیست خود عدد. عدد دیگه اصلا خیر خب اعداد نیست دیگه. واحدون چی؟ لا بتعویل عدد. این میشه او. خب اون اونا رو ایجاد کرده. خب خیلی روشنه. اونی که اینها رو ایجاد کرده که خودش دیگه نمیتونه این اینا باشه که. اینا شأن او باشن. ایجاد کرده خودشو که ایجاد نکرده که خودش ازلن بوده. قهرن چیزی رو ایجاد کرده که چیه؟ غیر خودشه مطلقاً غیر خودشه به هیچ وجه اینه او نمیتونه باشه چون او که بعض نداره که بگیم بعضش رو تولید هم که نداره چرا تولید نداره چون شی میتونه مولد باشه که باز متجزی باشه ابعاز داشته باشه اجزا داشته باشه اون که یا بعض یو وحد و بعض درسته همچین چیزی یا واحدی است که تبعیض پذیر نیست متجزی نیست خب اگر این گونه است پس او تولید هم نداره پس میشه ایجاد میشه ایجاد لامنشه که در روایات بهش اشاره شده لامنشه یعنی چی این یعنی از خودش ایجاد نکرده از هستی خودش مایه نگذاشته چون مولد نمیتونه بود. چون اجزا نداره که تولید بکنه چیزی از او کاسته بشه ساله به انتفاع موضوع و محمول و همه چیزه خب پس ایجاد کرده هرچه ایجاد کرده ابتدا داره و هرچه ایجاد کرده قهرن مسانخه با اون نیست یعنی تباین وصفی با او داره در چه جهت ماسه والا همه حادثن محدودن متغیرن زیادپذیرن نقصانپذیرن و مانند اینها او نه حادثه نه متجزیه نه متغیره و ما یعنی همین یعنی سنخ وجودشون با هم دیگه فرق داره حالا او جای اینو تنگی نمیکنه که ببینید شما اشکالتون نهایت اشکالتون اینه میگید چون او نهایت جا برای غیر چیه نمیگذاره میگیم بله در مثال دریا و موج حرفتون درسته چرا چون دریا مکان بی اگر داشته باشه واقعا جا برای هیچ آبی در قبال خودش نمیگذاره چون مکان بی هر آبی فرض کنی هر قطره ای فرض کنی میشه زیرمشموی او یا بعد نظریه جناب استاد آیه فیازی رو قبول کنی که بگی دریا در خودش متداخلا یه چیزی رو میتونه خلق کنه که بعد جای همون تنه نکنن تداخل کنن در هم یا اینکه بگی موج دیگه چاره ای نداره چون بی نهایته دیگه پس هر چه میشه موج او. اما اگر یه ذاتی مکان نداشت امتداد نداشت نه بالا بود، نه پایین بود، نه تو بود، نه بیرون بود، نه جایی رو پر کرده بود، نه جایی رو خالی کرده بود، اصلا پر نمیکنه چون پر کردن وسیله مکانه. که حالا بگیم بی نهایت پر کرده. بعد حالا وقتی میخواد خارج بکنه چون بی یه نگاه میکنه، این وارو می یه نگام میکنه، این وارو می نیشه. هر خودم می نیشه خودم. خ چرخ بزنه مثلا نهایتا یه تکوور بکنه یه اتفاق بیفته یا تو خودش یه چیزی رو ایجاد بکنه ما میگیم نه اصلا او جای رو پر نکرده اصلا جا نداره مکان نداره نه مکانش بی‌نهایت معاذ الله که سئی بینهایت داره اصلا س اوزیق رابطی به اون اصلا عددی نیست امتدادی نیست مقداری نیست لذا او اینا وقتی مکان ها رو خدا ایجاد میکنه مکان ها نمیتونن وجود رو حد بزنن چون خودش مکان نداره اگر اونم در یه موطنی بود بله هر چی می‌خواست ایجاد کنه بعد فارغ از اون بیرون از اون موطن ایجاد می‌کرد که جای اینا تنگی نکنه او اصلا مکان نداره او. که بگی تنگ کرد یا جا برای غیر گذاشن یعنی اصلا جا برای غیر گذاشن یعنی چی میگه مکان داره که جا بذاره یا نذاره اصلا جا نداره لذا یه موجود بلا مکان میتونه چیه حالا با تسامح بی‌نهایت موجود مکانی خلق بکنه هیچم اونها مزاحمتی با او ایجاد نمی‌کنن چون مکان نداره لذا با همین برهان ما نشان میدیم اون مشکل ذهنی که آیان دارن تو تصور مطلق بودن وجود حق غیر متناهی بودن وجود حق همون تصور اشکال داره یعنی غیر متناهی بودن حق رو ناخواسته یک غیر متناهی کمی داره میبینه بعد برای چی میگه جا میذاره یا نمیذاره این سال نباید تر بشه یعنی چی جا میذاره جا نداره اون یه موجود غیر محدود میتونه هر چی بخواد ایجاد کنه مکان ایجاد کنه مکان او رو حد نمیزنه که چون سنخ اون نیست خب، حالا نگاه کنید من این سری عبارات می خونم از خود آقایان که احیانا در شرح اصول کافی مرحوم ملا صدرا فرموده یا قاضی سعید قمی فرموده که ببینید ناخواسته یا خواسته به همین معنا تا حدود زیادی اقرار کردم حالا عرض میکنم ببینید قاضی سعید اول بخونم شرح توید صدوق داره دیگه مستحضرید شرح نسبت کاملا نیست دکتر یاس نه سآلات میگه ما سعی میکنیم جانتو که وسط صحبت رو نایان رذت ببریم سآلات رو برای یه تایمی بذاریم که سآلات رو پاسخ آف بریم بزرگواری ایشون زیل همون روایاتی که توضیح میدن که مخلوقات زیاده و نقصان پذیرن قاضی سعیدی همچین بیانی داره میگه میفرماید که امس تلزام و تناهی اینکه تناهی مستلزم چیه لقبول زیادت و نقیصه ففل حسی یعنی در حسیات فظاهران که واضحه دیگه حسیات همه زیاد و نقصان پذیران این که روشنه بعد نکتهش اینجاست لانه من خواسل کم چی؟ زیاده و نقصان پذیری این از خواس کمه روشنم هست خب پس اون ذات مقدس که خالق این دیگه او متکمم نیست رضا نه بی نه با نهایته هر دوش غلط چون من خواسل ک عدم تناهی و تناهی کمیت نداره. عذایی میگم چه تعبیری استفاده بکنیم؟ ببینید در خود ما خدا بی‌نهایت، در ویدیو میگیم نهایت داره، ناقصه. نظرش... ببینید اگر شما بگید ما سوا محدودن، من بحث الان زبانی دارم، ها، بحث زبانی است که معنا هم بتونه منتقل بشه. شما با همین الفاظ معنا رو منتقل دیگه. ببین اجازه شما میگه آقا فلانی مرد، او یکی نامرد. بگیم خب خدا نامرده ما الله، بگیم تعبیر خوبی نیست دیگه آه. اگه منظور ادنه که خدا مرد نیست، یعنی جسم نیست، خب درسته خدا جسم نیست، مرد نیست، زنم نیست اما نمیگی نامرده، این تعبیر تعبیر قشنگی نیست میگید غیر، مثلا جسمانیه مثلا، چون مرد هر, هر مرد جسمانیه دیگه غیر متجزیه، غیر مقداریه، غیر محدوده <تصفيق> یعنی در با تعبیر ما میگیم خدا نامتناهی است آ نام ببین اصلا میخوام ارزو کنم تناهی نام تو زبان فارسی من اینجور برای متبادر میشه. اگه کسی بگه اصلا برای من این معانی متبادر نمیشه. منم وقتی میگم نامتناهی دقیقا منظورم همینه که او اجزا و ابعاد نداره، او امتداد نداره. ما دیگه چه دعوای زبانی و لفظی نداریم ولی من استزهارم از کلمات آقایون اینه که بر همین به این لوازم ملتزم شدن. وقتی میگن نامتناهی یعنی هیچ وجودی از دایره هستی او خارج نیست. خب میگیم دایره هستی یعنی گسترده داره. تمام این درخت و سیب و گلابی همه‌مون در خودش جذب کرده ولی اگر بخواد خارج بشن این دیگه محدود میشه این حرفا ببینید اینم دقت فرمایید اگر کسی اینو بگی حالا بگی ببین من کاری ندارم این حرفایی که زدی همین که تو بگی خدا این نیست خدا رو محدود کردین محدود به عدم این یه یعنی حده دیگه حده دی. میگه مقاحت مشترک لفظیه اون حدی رو ما از خدا سلب می کنیم که منات امکان و نیاز و حدوسه کدوم حد مقداری بودن اما به این حال تو میخوای خواهی به این بگی حد ما دعوان رو بگو, بگو, بگو به این منا خدا محدوده خدا محدود است میگیم به چه معنا؟ مثلا به این که مثلا نمی تواند مثلا فرض فرمایید که اجتماع نقیزه این خلقه دو تا پنجتا خلق کنه مثلا خب بگیم خب محدود داره مثلا همین بالاخره یه حدی داری میزنیم خب میزن خدا محدود است به اینکه که زمان نداره مکان نداره خب میبینید با الفاظ بازی کردنه اگه میجوری این حد به این معنا میگی همینم هم تو یه حد داری میذاری اصلا یه چی نباید بگی سخن نباید بگی بگیم این حد که لازمه همه قائل به نفی راجب به خداوند نیستی که من راجع به این به خدا میشه سخن گفت میشه محمولاتی رو بر ذات مقدسش بار کرد این همه الان ما حرف زدیم موضوعش خداوند سبحان بود دیگه نه حقیقتا غیر محدوده حقیقتاً ازلیه همین که رو گفتی و این خودش قید زد همین ما این قیدیش اشکال نداره این قید اصلا لازمه یه. الوهیت حق این قید ازلیت این قید غیر حادث بودن این قید غیر متحرک بودن این قید غیر زمانی بودن ولی خدا این قید ها رو داره اشکالی هم نداره اشکال نداره که اصلا حتما داره این قید ها رو ولات الوهیتش زیر سوال میره این همه در روایات میگه خدا این نیست این نیست این نیست اینجور نیست اونجور نیست هی داری خدا قید میزنی که آره قید میزنی اشکال نداره صفات ثبوتی و سلبی سالبiero میخواد صلب بکنه باله بله. قید دیگه میگه همه هم همه, همه بله. قید میقوله چه بله. اشکال داره قید باشه مشکل نداره عرض معزه شریفتون که این یه عبارت یه عبارت دیگه باز من از آخونده. در روایت ها مثلا ظاهرا داریم از میگم خدا لا حد له هست من هم. همون معنا دقیقه دقیقه حالا, حالا. بله بله ببینید من که نه پیدا بکنم عبارات اخوند ملا صدر رو رو خیلی خوبیه اینجا حالا قاضی سعید عرض کردم خدمتون ایشون هم تبیینشون اینه ببینید این در شرح اصول کافی جلسه صفحه سی سد و هفت فلو الباری تعالا متناهین لکانت ذاته قابلتن لزیادت و نقصان بسیار حرف خوبیه و کل ما کان کذالک یعنی زیاده و نقصان پذیر باشه متناهی باشه اخکان اختصاصهو بذالک المقدار معین دون غیره لتخصیص مخصصن شما وقتی میگه آقا این این مقدار داره اون یه ذره بیشتر داره اون یه ذره کمتر داره یه مخصصی میخواد یه حادی میخواد اینا محدودن یه حاد دارن سؤال مزاخوند اینه آیا حد میتونه عین محدود باشه خدا خودش حد میزنه؟ به, وجهی. به خودش ی حد میزنه عفی میشه درخت. خب غیرو حد میزنه دیگه خودشو کنه مسخره از حد بزنه خودشو. خب و تقدیر مقدرن حرف بسیار درسته و کل ما کانکذلك فها محتف. هر چی اینجوری مختص حادثه. دقیقا داره هم ملائکه که مرز کردم ایشون هم به برکت اینم باز شرح روایتیه ایشون داره این رو مطرح میکنه. یا عرض محذر شریفتون که یا مثلا جناب استاد آقای جوادی خیلی زیبا تو تفسیر تسنیم البته اونجا زلی یک روایتی بازشون ایشون توضیح میدن که تفسیر تسنیم جلد هشت صفحه دیویست و شست و میفرماین که بله طبق بیان نورانی امام صادق علیه السلام در این روایت قدیم آن است که نتوان بران افزود یا از آن کاست چیزی که در معرض حوادث و قابل تضییف، تکثیر، تقسیم، کاهش یا افزایش از حادث است. ملاک حدوث هر چی زیاده عادی و کمش حادثه. حالا اگر این بیانا کسی دنبال بکنه دیگه ما چیزی به نام مجردات نداریم همه میشن زیاد و نقصان پذیر. که به نظر اینجا کاملا آنچه کم و زیاد می شود حالا بنده اضافه میکنم کنم عکسش هم درسته دیگه و هرام چه محدوده کم و زیاد میشه. ولی مجرد دیگو. <تص> و در معرض حوادث است هرچند در محدوده ذهن و نیازمند مبدعی است که هرچند در ذهن کم زیاد کند بخشید نیازمند مبدعی است که هر چند در ذهن کم یا زیاد کنه سوال ذهنی من رو کم و زیاد بکنه و نیازمند هستی است که به هیچ وجه کاهش و افسایش در او راه نداشته نه در خارج نه در وهم نه در خیال و مانند اینها این زیاد و نقصان پذیر نیست خب اینو داشته باشید حالا ببینید این ریشه این حرفا در چه روایات است من یک روایات رو تبرکن تقدیم میکنم و بحثم تمام تقریبا دیگه. ببینید. روایت یکی دوتا نیست تا فکر نکنید من به یک تک و یک خبر واحد فقط میخوام استناد بکنم در اینی که به نظرم کاملا هم برهانی است روایات ما مثلا ببینید این روایت که با در تویید صدوق اینی که من دارم صفحه دیری سلشیش این توییدی ای که با ترجمه است صفحه دیری نه اون تویید صدوقی که تعلیقی آقای تهرانی این است داره که فلم یکن بود دون من اثبات سانه این مناظره است یا گفتگویی بین وجود نازنین امام صادق سلام الله و, و اون زندیقی که ظاهرا به واسطه هشام بن ملهم آمده خدمت حضرت حالا گه هشام ظاهرا میرفته با اینها بس می‌کرد حالا کم میورد هرچی بود میورد خدمت حضرت و حضرت هم به اینها خلاصه آموزش میدادن حضرت وجود مبارک حضرت فلم میگم یه ساری رو که از عزیزان خیلی اصرار روش میگه گه اوقات همین صحبت حضرت از صحبت هزارات که کهان از رواتشون دا میند استراادشان که از روایات هم پاسروخ دریافت بکنند که بعضی از افراد تعبیر دارن که به هزارات معصوم تجلی رحمت خودان، تجلی مثلا عطوفت خدا این همون شکل نمیشه نه نه این اشتراک لفظی است در واژه تجلی حالا عرض اونو سوی. یه اشاره میکنم چشم بله. بله من اینا اگه اجازه بفرمایید قرائت بکنم بعد در خدمتتون هستم فلم یکون بودن من اثبات سانه چرا لم یکون بودن لوجود المصنوعین ببینید این قبلا مسبوق به یک سوالی است که یه بحث خودش مجزایی داره که خیلی هم جای گفتگو داره و خیلی‌ها برشون سوء تفاهم شده که آیا خدا توهم میشه یا نه طرف به امام صادق اشکال میکنه طبق این نقل البته که میگه آقا شما اینه که میگی پس خدا توهم میشه که شما داری راجع به خدا حرف میزنی میگه هو ربون معبودون چه چه چه چه داری وصفوار میکنی بعد حضرت میگه خب آره من توهم کردم لانا لم نکلف ان نعتقد غیر موهوم ما چیزی که تصور نکنیم که نمیتونیمش اعتقاد پیدا بکنیم با تصور کنم تصدیق کنم دیگه این وازاات دیگه اما چه جور تصوری این مهمه یک تصور ذهنی که ذهنی به این ذهنی که حتما ذهنی است ولی خدا رو مثل یک موجود مثل به قول روایات منسوب به حضرت رضا که کت تسلیسه و تسدیسه مثل مثلث و مربع تصور بکنم خدا رو یا جسم بی‌نهایت ببینم این غلط این چنین ها می غلطه اما به این معنا تصور کنم به این معنا که چی او است متناهی نیست مقداری نیست اجزا نداره زمان نداره مکان نداره بااله قاتن مش من دارم و هیچ وقتم خداوند رو از این تصور نمی نمی‌کنم بگم سبحان الله نه خب سبحان الله کفر اگه بگم چرا؟ چون بگم سبحان الله نقیذش رو اثبات کردم سبحان الله که خدا عددی نباشد است دیگه بست عددی پس بس. چون ارتفاع نقیذی این که محاله که خب اقلی ارباط بخونم ول ازترار منهم هم اله چاره معرفت ازتراری به نظر ما همینه معرفت اضطراری همینه یعنی عقل چاره جز اقراره به خدا نداره خب اثبت انهم مصنوعون و ان سانهم غیرهم تمام شد سان غیر مصنوعات باشه واضحه دیگه خالق ایناست دیگه این بدیهیه ها ولی دیگه چاره‌ای نداریم تو این بدیهیات تاکید بکنیم دیگه و ليس مثلهم نباید شبیه اینا باشه در چه جهت اذن اذن کان مثلهم مثلهم هم شبیها بهن فی ظاهر ترکیب و تالیف یعنی مخلوق مرکبه و اون سنخیت, رو حضرت سنخیت به چه معنایی این و عرفام جایی میگن میگن خدا و خلق سنخیت ندارن او وجود اینا ممدومان سنخیت بین وجود و عدم که نیست که درسته نه ما با این معنی نمیگیم ما میگیم سنخیت نداره ملاک و داره روایت میگه سنخیت مهد. یعنی چی یعنی اون است که زمان و مکان و اجزا و ابعاد و زیاد و نقصان پذیری نداره مهد. ما سبحانه همه دارن در این ویژگی همه مشترکن مهد. از نور مقدس امیرالمومنین شما بگیر زیاد و پذیر تا دیگه اشیاء فرقی در این جهت هیچ ندارن تمام سبحانه خب بله مثلشون از اذ... با مثلشون باشه شبيها بهم به في ظاهر التركيب و تالیف و ما و فيما يجري عليهم من حدوث هم بعدا لم يكونو خب اگر اونم زیادا نقصان پذیر باشه حادث میشه بعدا لم يكونو خب اونم نبوده اومده خداییه خدایی که نبوده آمده خب خالق میخواد خدا نیست که خالق ما نمیتونه باشه که خیلی روشن یا مثلا فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه اون چه در خلقه در خدا یافت نمیشه و کل ما یمکن فیه یمتن اون چه در اینجا ممکنه ای ممکنه حرکت کنه زیاد بشه کم بشه در خدا محاله محاله خب ارزمزه بعد نگاه کنید رو چی حضرت تمرکز میکنه طبقه نقل لا تجری علیه الحركه و سکون ببین دوباره اینا همه حرکت پذیرن ما س بحث ما و والله خداست ما یا متحرکن یا ساکن خداوند نه ساکن نه متحرک چون جسمی وجود زمان داره یک ده شی حرکت وجود یک شی در زمان اول در مکان دقیقا. اول و دقیقا. در زمان دوم در مکان دقیقا. دوم. احسن تو. سکون یعنی وجود یک شی در زمان اول در مکان اول و در زمان دوم در مکان اول و خدا از این دو حد خارج باشه یعنی سنخیتی سنخیت رو اینا. حضرت اصلا و کیفه کیفه یجري ماه و اجرا برهان مسئله اینه چگونه ممکنه چیزی که تو مخلوقات جاری کرده به خودش هم جاری بشه خب اشکالش چیه اگر به خودش هم اونها جاری بشه خودش میشه سن خیلی خودش هم میشه نیازمند میشه مثل مخلوقاتش ببخشید بچم اون خالق منه و غنی از منه و من در حدوث و بقا به اون نیاز دارم اون که مثل منی که اونم که حرکت میکنه، تغییر میکنه تعبیر زیبای حضرت ابراهیم به نقل قرآن عزیز لا هو بالآفلين چیزی که آفله چه جوری خالق من باشه رب من باشه معنی نداره تو میگی خورشید خود خودش آفله گای هست گای نیست چجوری میتون رب من باشه معنی نداره بله کیفا علی ما و از او یعود علی ماه و ابتدعه اون چیزی که خودش ابتدا ابتدا این کلید واژه است در روایات ما ابتدا داده دیگه اون همون ویژگی در خودش جاری نمیشه چون اگه در خودش هم جاری بشه خودش هم میشه مبتده الوجوده دیگه ازلی نیست خب ببینید باز تحلیل ازن خب چه اشکال داره جاری بشه ازن لتفا و تتزاتو و لتجزع کنهو میشه متجزی چیزی که حرکت میکنه متجزیه چیزی که سکون داره متجزیه متفاوت و ذات نیست که بگیم این ورش، اون اونورش بالاش پایینش چپش لایه روینش لایه زیرینش بواطنش اینو راه نداره در خداوند روحش بدنش این حیثش اون بعدش ابعاد نداره خداوند اون لقامت فیه آیت المسنوع نشانه مصنوعیت درو پیاده بیان همش برهان عقلیه اینم بحث نیست که حالا میگیم امام رضا فرمودند دیگه ما که میشین میفهمیم اصلا هم نیست برای تعبیدن اصلا و ابدا خیلی روشن حالا ربات زیاد من دیگه بیشتر از این حالا ان هم کتابای فراوانی در این حوزه نوشته شده مطالعه می‌فرمایید و رباتش هم جمع شده و ماند اینم فقط عرض بکنم که ربات معروفیه اینم فکر میکنم در توحید هم در کافی در هر دو باشه بله لان کل محدودن متناه الوهیت و هر و اذا تحمل التحديد هر چه حد پذیره احتمال از زیاده و, و, و از احتمال از زیاده احتملن نقصان هرچی که بشه زیاد بشه خب میشه کمم بشه به همون منات چون کمیت داریدی خب میشه بیشتر بشه میشه کمتر بشه میشه حالا ممکنه فقط مثلا حجمش بیشتر هم نشه به فرض ولی امکانش هست تغییر بکنه تبدیل داشته باشه خب فهوه غیر فهوه خدا غیر و محدودن این تبیر اشکال نداره غیر و محدودن یعنی از این سنخ نیست ولا متزایدن زیاد پذیر نیست ولا متناقصن کم پذیر نیست ولا متجزعن ولا متوهم که در رواد داره ولا متوهم و والکفره ها نه اینکه مطلقاً تواهم نمیشه، در رواعت فراوان داریم که خداوند توهم میشه ولی به همین معنا، به عنوان ذات متعالی از زمان و مکان توهم میشود تتلقاه الاذهان، در نهجه لاب المشاعره تتلقاه، لاب المشاعره و مانند اینها در این حال به عنوان موجود متجزی نباید توهم بشه این حالا به نظرم به همین میزان من بسنده کنم که کفاعت بکنه و الحمدلله رب العالمین اگر سوالی هست من در هستم. خیلی خیلی مشکرم جناب هندی عزیز استفاده, استفاده کرده گرچه ریتم جلسی قبلی جناب دکتر قنده هاری خیلی ریتم ملایمی بود <تصفح> و سخنان حضرت آلی سرعتش به اونقدر زیاد بود که رفاقا از نتبرداری خیلی مندد خیلی مشکرم تعابیر واقعا عالی بود و دلائل و روایاتی که فرمودید حض خیلی عالی بود و به بود و عزیزان توصیه میکنم این کتاب وحدت وجود جدام هل... دکتر هندی رو حتما مطالعه بفرمین بسیار عالی و مفیده چیزی دیدم جامع تبرخ کردم واقعا خداقوت باید گفت با تعابیر حضرت عالی تفاوت تشکیک در فلسفه با خدای وحدت شخصی در عرفان. بله. خدای فلسفه میگه خدا رو در اعلی مرتبه اعلی شدت وجود میپنداره و خدای وحدت شخصی، اون وحدت است. خدای بله. وحدت شخصی خدا رو خارج از این نظام میدونه و شدت و ضعف در تجلیه بله. در نمود هاست. این تفاوت نمیشه حساب بکنیم بین این بله. دو نظری وحدت وجود بسیار ببینید توی نگاه بدعی همونجور که خیلیا گفتن میگن آقا این تفاوت دیگه احا. اون مثلا بالاخره میگه وجود ضعیف داریم، وجود شدید داریم، این میگه وجود شدت و ضعف نداره هران شدت و ضعف داره چیه؟ تجلیاته بعد میرویم سلاغ مرحوم آخوند ملاسد را میگیم آهای ملاسد را میگه بفرمایید میگیم منظور شما از وجود شدید و ضعیف چیه؟ یعنی یه وجودی مثلا آب رفته بعد دوباره اینجوری عرض کنم رشد پیدا کرده مثلا از بالا به پایین یعنی یه نگاه هرمی که اون بالا بالا بعد اومده پایین پایین پایین پایین یک وجود آمده پایین اینا هم حقیقتا وجودن اینا هم حقیقتا وجودن بعد خدا کناره ایجاد کرده اینا ضعیف شدن و چون خودش ایجاد نشده قوی و بی نهایته میگه من خودم توضیح دادم دیگه من عباراتش خوندم میگه من که اینو میگم میگه من میگم اینا رابطن مراتب, مراتب زیاد مراتب در همون فضای ربطه یعنی این یعنی یعنی این آینه بیش از مثلا دیگری نسبت به کمالات حق به عنوان رابط ببینید مثال دیگر رت کنم این مثال خودش رو نیپسندانه ولی من چاره ای ندارم ببینید شما یک وجود بی‌نهایت دارید خب شما گاهی یه دا... دریای بی‌نهایت دارید اینجوری بهتره شما گوی یه دا... دایره کوچولو فرض می‌کنی توش یه دایره یه مرتبه است یه دایره بزرگ در نظر میگیری یه مرتبه دیگه است یه دایره بزرگتر داشت در... ببین تمام این دایره‌ها عیناً ربط به دریا هیچ هویتی ورای اون نداره ولی میگه مرتبه دیگه مرتبه کوچیک یه بزونه بزرگتر یه دونه بزرگتر یه دونه بزرگتر خود خدا هم که بی‌نهایت همه جا توش میتونی دایره دایره بشه مراتب این مراتب در دل اون وجودن نه خارج از او یعنی همون رابطه رابط یه دایره یه دایره خوندم به بالاش میگه اینی که من گفتم یعنی بقیه میشن شونات و تعیینات خود او یعنی شما هی دایره دا... مثلا دایره اینا خود ابن شبیه شبیش خیلی دارنا موجو گفتن دیگه یه موج تر، یه موج اقوا یه موج اقوام نشه مراتب همون یک هستی عرفا میگه غیر از این میگن عرفا میگن تجلیات همون یک هستی میگن تجلی چیه میگه رابطه نسبه، اضافه است هیچ هویتی ورای او نداره خود مولا صدر گفت رابط کلمرات عرفا میگن چی میگن ماسبا کلمرات. حالا ماشاءالله دیگه روحش فرق اساسی نداره حالا کسی هم خیلی اصلاح کنه بگینه به جان خودم اینا فرق شد و فرق دارن میگین بلخل هر دوی این نگاه ها قائلن به اینکه خداوند سپان حقیقتاً شیعی غیر از خود را ایجاد کرده که کاملا غیر اوست اصلا باباد ما قائل نیست شد حالا میگه عدم اون میگه ماهیت اون میگه رابط اون میگه روابط اون میگه رابطی دیگه میشه به نظرم. الفوزم عباراتنا گفت 60 تا و حسنک واحد <تصفيق> و در نهایت به همون قصه برمیگردن که همه ذات پرداری خداوند برد. اما صحبت کرامون قاعده ال در جلسه قبلی هم پیش آمد چگونه می توانیم بگوییم که اه... <تصفيق> ا جو الق الواحد دایستر نقدی که عزیزان فرمودن شاید مختصر بود دوست دارم از شما هم بستمین که قاعده بله. الواحد چگون میتیم ناقش کنیم ببین خلاصش اینه اگر تو بحث ربط بین حادث و قدیم که گفتیم میشه از عویسات مباحث الهیاتی و اینهاست نسبت حادث به قدیم میگن آقا چه میشه خود ملاصدرا بزرگون یه اقرار کردن که بحث بسیار پیچیده است که کثیر چجوری از واحد صادر میشه این بحث کی پیچیده میشه وقتی باشه کسیر از دل واحد جوشش بکنه. چون جو میگه چجوری میشه از دل واحد حقیقی کسیر زد بیرون. قادر سنخیت چی میگه؟ میگه آقا چگونه ممکن است از دل یک قورباغه یک فیل خارج بشه میشه؟ نمیشه دیگه قول باغه چیزی که باز خارج بشه تولید بشه بعد با خودشی داشته باشه سنخیت قابل سنخیت داشته باشه باید. سنخیت بعد داشته باشه اگر ببین در فضای تولید مولد وقتی چیزی رو تولید میکنه چون از درون خودش ترشح میکنه و میجوشد باید به با اون سنخیت داشته باشه وقتی پیش فرض و پیش ذ ناخواسته یا خواسته این باشه این سال سخت میشه که از دل واحد حقیقی چجوری کثرت زده بیرون واحد حقیقی کثرت پس چین یه واحد میزنه بیرون فقط دوباره از اون واحدم چاره نیست، یه واحد دیگه بزنه، نهایتا فقط کسرت نباید پیدا بشن، یه واحد واحد واحد دیگه نباید کسرت حالا چجوری میاد، درست میکنند یه جوری مشاقی ها که خبیلی عجیبه عرض نظرتون که ولی ما چی ارز میکنیم؟ ما بگیم بابا اصلا رابطه خدا با رابطه مولد و تولید نیست وقتی از درونش نمی جوشد یعنی چی یعنی ایجاد میکنه لامنشئی بدون ماده و مده ماده و مده رو ایجاد میکنه بدون ماده و مده یعنی از چیزی کمک نمیگیره برای ایجاد حتی از ذاتش مایه نمیگذاره لامنشئی کن فیکون ایجاد میکنه و وقتی ایجاد کرد قهران شیء موجد ابتدا و بعد داشته باشه و وقتی ابتدا داره قهران بعد عددی باشه و وقتی عددی قهران بعد متجزی باشه و وقتی متجازی حتما باید کثیر باشه و اینه از واحد حتما باید کثیر حالا تعبیر صدور تعبیر خوبی نیست صادر بشه بیرازی امکان نداره محال از واحد واحد صادر بشه دقیقا همینطوره اصلا کلن تصور اینطوریه که فلسفه به خصوص فلسفه اثارت الوجود هرگز نمیتواند مخلوقی را اثبات رو چون قائل به صدور و رشهان و فیرزان و, و این چیزیست که خود فلسفه از عزیزی در فضای مجازی پرسیدم من پاسخم رو نگرفتم آیا امام معصوم تجلیه سرمات فیل اگه هست این شرک میست؟ بله بسیار نه نه ببینید به این معنا تمام عالم تجلی رحمت خداست هرچی ما می‌بینیم هوا این نمی‌دونم این عقلی که خدا به ما داده همین ویژگی گارد تجلی رحمت خداست به همین معنا ببینید اولا مستظر دیگه رحمت یه واژه انتزاییه دیگه ما یه قلمبه‌ای به نام رحمت که ندیدیم می‌گیم خدا یه درخت خلق یا رحمت خلق میکنه؟ که نیست که خب از اون باب که می‌گیم آقا اینا عقل انتزاع می‌کنه که اینا خب من می‌بینم اگه به برکت عقل خیلی کارا میکنم، به برکت نمی‌دونم قلبم خیلی کارا می‌کنم برکت چشام خیلی کارا می‌کنم اینا رحمت خداست لطف خداست به من درست آلا. بعد اینا میشه تجلی رحمت یعنی چی تجلی تجلی یعنی آشکار شدن ظاهر شدن خب یه روایاتی داریم روایت زیادم داریم مثلا الحمد المتجلی لخلقه به خلقه البته به خلقه دقیقا. دقیقاً یعنی شما وقتی خلقو نگاه میکنی میگی این آیه خداست تجلی خدا تجلی چی یعنی ذات او به صورت درخت ظهور کرده هرگز به این معنا نیست یعنی من رو که می‌بینم هم بس کلام داشتم این دلخ تجلی قدمه این با حدوسش تجلی قدم خداست با فقرش تجلی غنای خداست با زیاد و نقصان تجلی و آیت عرض مظهرتون که عدم تناحی خداست و ماننده اینها حالا میگیم اهل بیت باد باران اینا رحمت تجلی رحمت خدا این هم اینه عقل من تحلیل میکنه میگه آقا اینی که من میبینم عقلو خدا برام خلق کرده از این عقل اینقدر استفاده میکنم از اهل بیت اینقدر در همین توحید استفاده کردم اینا امام من شدن معلم من شدن من از جهالت و زلالت دهریگری و اینها نجات دادن به عرض کنم که صوب ثواب توحید و هم سال زالک رهنمون شدن خب یعنی چی یعنی تجلی این تجلی رحمت دیگه اما اگر کس بگه تجلی رحمت یعنی اینکه این خداست که به صورت مثلا امام رضا چی شده ظاهر شده مثلا این از وجود خودش اینجا ولی این باطله من الان دو تا سال دستم رسید حالا قبل از اینکه این سالا رو بپرسم لذت بردم که چقدر دقت دارن عزیزان و توجهشون تو جلسه هست من خب واقعا خستگی از هستن منو فهم کنم آیه هندی قطعا برطرف شده باشه میفهمم هر که عقی... اینجا چرت میزنه اینجا دقت نه اخوندا ساری که چورت هم بزنه یکی از دستای ما چورت میزد سر دست ولی اشکال هم خیلی دقیق <تصفيق> اشکال میگاد استاد بر ما علی علیه السلام میفرود که این داره چورت میزنه چه جوری این سوالو به ذهنش میذاره ظاهرا دقت کافی داره طلبه می فهم میکنه میفرماند که برای اثبات غیریت بله. غیریت نقایص رو مثال زدید بله و روایاتی شاهد مثال آورید اما کمالات و فضائل چطور در کمالات و فضائل هم کمال, کمال غیریت حاکم است قطعاً ببینید چرا چون تمام کمالاتی که ما داریم باز در همین حوزه زیاد و نقصان پذیری و حرکت برای ما حاصل میشه و تمام این کمالات برای خدا اگه حساب بشه نقص خداست مثلا، حالا مثال ساده الان شما میگید آقا این هندوانه کمالشی شیرین باشه هرچی شیرین تر باشه این هندوانه بهتره آقای خدام بگیم پس خدا بی نهایت شیرینه خدا این دیگه خدا خدایی میوفته دیگه خدا که شیرینه خب کمال مثلا فرض کنید ما اینه که مثلا حالا یه سوادی داریم مثلا ان تقوای داشته باشیم مثلا نمازی بخوانیم بگیم خدا دیگه خیلی نمازاش عجیب غریب حالاتی که در نماز خود خدا داره اصلاً حدی نداره اون کمالو رو... بله برای, برای امام معصوم این کامالی که سجده بره اونجوری اشک بریزه خلوص داشته باشین کمال امام معصومه آ بگیم همین دیگه در خدا چه جوره اون سجدای خدا دیگه شبانه عجیب مثلا دیگه. پس دیگه. از کمال در خدا کمال مطلق <متبع> تعبیر ببینید دو پهلوه به نظرم مثل تعبیرش شاید به یک معنا دقیق نباشه کمال مطلق من ارز نفر... نکردم نفر می‌دانم ارز نکردم خداوند سبحان لگی کمال مطلق یعنی این یعنی خداوند کمالاتی دارد که شایسته یالوییت اوست و همون غیر محدود بودن بلا زمان بودن بلا مکان بودن، همش به همین برمیگرده شما میگه عالمون باز علم او در زمان و مکان و اجزا و ابعاد نیست قادرون ایجاد میکنه اشیا رو باز در کیفیت و کمیت و حالت و اینها نیست تمام کمالات روحش برمیگرده به همون غیر محدود بودن و ازلیت و صمدیت و احدیت خداوند تمام کمالات ما همش در مدار و فضای حد و زیاده پذیری و نقصان پذیری و حرکت و امثال زالک برای ما حاصل میشه در زمان حاصل میشه هر چه داریم؟ جسرتا میخواستم هم به همین نکته اطفاق برسیم خوش. که کمالات خدا هم جنسش متفاوته صد در صد میتوانه بعضی تصوارش اینه که ما غربتن الالله صحبتی میکنه میگه آقا نماز میخوانم غربتن الله. احساس میکنه که خدا یک راهی دارد که باید به او رسید و به کمال رسید کمال بانده. خدایی بانده. و بانده. صفات خدایی در من هست یک چیزها بانده. و تعاویری که در حالی که از اساس جنس کمال خدا بانده. با جنس کمال خلق متفاوته عن ذلك صح عن مجاونسه مخلوق ليس برب ان حديث منسوب به سالار شهیدان در توحاف العقول ليس ربن من تور تحت البلاغ او وجد في هوا ام غير هوا چیزی که بهش برسی خدا نیست چیزی که بیابیش بیش بگین نائل شدم بشه رسیدم یافتم در وجودم در خارج وجودم دارم شهودش میکنم تو متن هستیم خارج هستیم این بدون یه متجزی مثل خودت دیدی ذاتی که زمان نداره آنات نداره بگیم در این لحظه من یافتم شهودش دارم مستقیم میکنم چقد زیباش مطمئن بشه توهمی بشه چون زمان نداره که در آنی بتونی چیکار بکنی او رو بیابی فراچنگ بیاری حالا با با چشت با هر جای دیگه چون قلبتم مثل چشت چیه متجزیه محدود مقداریه و محدود توان اینکه بتواند مستقیم بلا واسطه چیزی را بیابد شهود کند وجدان کند برسد ملتصق بشه منفصل بشه ندارد خداوند نه ملتصق به چیزی میشه نه جدای از چیزی میشه نه درون چیزی میره نه برون چیزی میره نه در زمانه و نه در مکان لا به رب من تورها تحت البلاغ تمام معرفت الله هم که در روایت توضیح دادن همون کل معروفن بنفسه مصنوع هر چلاتون تونستی مستقیم بیابیش مصنوعی بیش نیست خداوند سبحان تجلا للعقول در روایات داره تو همون نهج داره و امتن عن منها به ها یا لها و امتن عن منها یعنی قلیب نقل مضمون یعنی عقل است که به مشاهده آیات به تعلیم وحی میفهمد که این آیات یه ظل آیه‌ای است که اینها رو همین که عرض کردیم از برکت روایت اینو عقل میفهمه فراتر از این یک قدم بره اینور میشه تعطیل یک قدم بر اینور میشه تشبیح که اونجا گفت و من را فقط هلک فراتر از قل هو الله و احد بخوای یک قدم بری میشه تجزی اینور بری اونورم بری میشه تعطیل که من فوق احدیت هیچ نمیتونیم بگیم اونم غلطه احدیت است و تجزی نیست صمدیت است و جوف ندارد لم است یعنی ایجاد میکند لامن شی و شبیه و نظیر و مثیل و مانند هم ندارد لم یکون لو کفون پس این تعبیری که میفرمایند در مورد قرب الله نماز ظهر و عصر میخونم قربتا الاله دقیقاً قرب به معنای رسیدن به اون کمالات نیست یعنی مثلا من یک نقص مطلقم و خدا کمال مطلق من نماز می‌خوانم تا از این نقص برهم و به آن کمال نزدیک شرد شدم از جهت استفادی این تعبیری که بین بله. آوام، حتی بعضی از بله. روحانیون من دیدم این تعبیر رو می‌کنند بله بله. این چطور تعبیر حسابی سپرگفر؟ طبق مبانی آقایان که خدا بی‌نهایته و ما با نهایتیم اصلاً قرب مبانی خودشون ها اصلاً قرب، عقلاً مستحیل چرا؟ توضیح میدم؟ ببینید الان شما میگی آقا پیامبر اکرم در اون سیر مراتب سعودی اقرب از من و شماست به خداوند میگیم چجور؟ میگیم مثلا پیغمبر درجه مثلا اکسه درجه صده هزاره صده من درجه سه و چهاره میگیم خیلی خوب سوال اینه مگه خدا بیناهایت نیست میگیم چرا فاصله محدود چه صده هزار باشه چه سه باشه با نامحدود چقدر فاصله است؟ نامحدود دوباره پس نه پیغمبر نزدیک شد، نه من نزدیک شدم هیچ کدوم اغرب نیستیم چون او نامحدوده دیگه هماره فاصله محدود با نامحدود نامحدوده در نامحدود هم دیگه زیاده و نقصان پذیری معنا این نامحدودتره معنا نه. نداره پس نه پیغمبر قرب پیدا میکنه نه ما قرب پیدا میکنیم اما چی ارز میکنیم میگیم آقا قرب قرب کرامه یا در خود قرآن هم یک آیه ای هست که میگه این صدقه که میدن قربتون لهم خدا رحمت رو برای رحمت حالا من هر توضیحی میدم یعنی آیه سوره توبه الان عین آیه به ذهنم نیست اما توضیح میدم قرب رابطه قربت و بهره مندی از رحمت الهی من قربون اله الله دقیقا دقیقا من قرب خدا دارم یعنی چی یعنی من در همین دنیا که هستم اگر موحد حقیقی باشم، اگر تسلیم حجت الهی باشم، اگر با تقوا باشم، و در آخرت هم انشاءالله به دار ثواب الله وارد بشم، اون انایت خاصه حق، اون محبت حق در قلبم باشه، دائم یاد خدا باشم، این, این رحمت‌های خاصه کهش شایسته ای انسان انسانم از حیوان از این بهره ای نداره اگر هر چی از این رحمت های ویژه بهره من باشم میگم تا به خدا قر قربت بیشتره نزدیکتری این قربی قرب قرب معنوی نه قرب وجودی که فاصله کم بشه یا زیاد بشه و ماننده اینها هر من بیشتر خود خدا هم غریبه باز خدا آیه توضیح میده غریبه البته اون فرق داره و نمیخوام میگم اونجا قرب معنوی است اونجا هم به این معناست که خداوند صدای تو رو میشنوه فکر نکنه تا خدا دوری اونوری خدا اونوره پشت کوه عجيب و, دعوت و دعوت. دار آن وقتی میگه من قریبم یعنی میشنوم یعنی تو نگران نباش هرچی به من بگی من اجابت میکنم با رحمتم با عنایتم تو هم میتونی به من نزدیک بشی در به برکت عبودیت و بندگی یعنی چی یعنی هر چی بیشتر از اون رحمتهای ویژه من که تجلیش میشه چی در این که من زاکر خدا باشم خالص باشم عابد باشم و ماننده اینها هرچی بیشتر من از این کمالات بهره باشم قربان به خدا بیش از کسی که نه ذکر نه یاد خداست نه به فکر خداست و البته وقتی میگم یاد خدا یاد خود تو خداها یعنی واقعا همون خدایی که با عقل فهمیدم همون خدایی که به برکت تعلیم و شناختم که منو خلق کرده، قرق این همه نعمت کرده، شبیه من نیست. این عظمت میاره برای من دیگه. رضا سجده میکنم در مقابلش رکوع دارم، سبحان الله میگم با لذت ان الله اون عظمت ازامل خالق هم انفسهم فصغرا مثلا غیر خدا در نظرشون که در خطبه متقینه همینه، اون عظمت رو با همون قوت عقل در ان شاء الله قلبم مؤمن میشه، محبت خدا به قلب سرازیر میشه و هر این محبت تسلی ایمان اضافه بشه یعنی من قرب بیشتری به خدا دارم نزدیکتم تو قرف هم گایی میگیم میگی فلانی فلانی خیلی نزدیکه گایی مزیدونی که مکانن نزدیکن گایی که مورد انایت اوست مورد لطف اوست میگیم به او خیلی نزدیکه یعنی چی اون آقا به این آقا نظر داره لطف داره و انایت داره عله بيد از همه نزدیکترن چون خداوند به اونها بیش از بقیه لطف و عنایت ویژشو شامل سینا و ادنا همین معنا داشته باشه قاب قوسین او ادنا راجع به وحی راجع به مراتب وحی و اونجا حالا بحث تفسیری بعد باشه که اون قاب قوسین نسبت به ذات خداسمعازله که دو قسم بوده بود به خدا برسه که از خلاف ضرورت دینه یا دو قسم مونده بود اون آیات کبرا رو ببینه تا اونجا رفت که جبل راه نداش که خودش هم داره یا نسبت به خود جبرئیل بود یعنی فاصله با جبل خیلی کم شد یکی از این هر کدوم از این چون اونجا هم داره لقد رآ در معراج من آیات ربه الكبرا یه آیات کبرایی دید که خود خودم بیان نمی کنه. چی چیچاد به عقل ما مثلا اصلا آیات نرسه که چیزی از عظمتهایی دید که اصلا ما تصوری هم ازش نداریم به اونجا رفته بله حالا عزیزی تعبیر دارن که در کتابی دیدم از بزرگان نام نمیبرم به جهتی این که الَّذِينَ آمَنُ عَشَدُّ حُبًّا لله ما هر چه نماز می خوانم، عبادت می کنم، روزه می گیرم، حج به جا می و, و و و این محبت خداوند در قلب من بیشتر می شود و این همان قرب است. چون مثلا پیشمنی در یمنی بله درست. که من هر چه قلبم به اون نزدیکتر باشد، را میگن این قرب به این معنا میتونیم تونید تعبیر داشته باشه؟ بله مرز کردم بالاترین رحمت الهی اینه که خداوند محبتش رو در دل من بندازه. <تص> علت محبت خدا خودش مخلوقو یعنی حالتیه برای قلب منه محبت خود خدا مخلوق نیست ولی محبت من به خود خودش یک مخلوق یک رحمت خاصه که خداوند در قلب مؤمن ایجاد میکنه چرا جناب خودتون بخوین اگه سر درستی جواب بدن اگر منات نیاز مخلوق به خالق حدوث و تجزیس خوب دریافت حدوث برای ما سولا فقط به وسیله تجربه ممکن است و تجربه یک نه جوابش اینه که ما یک مستاغم پیدا بکنیم که محدوده عقل ما میگه حالا برهان است دیگه هر محدودی لازم نیست برم تک تک محدود رو هی نگاه بکنم وقتی فهمیدم میدم مسلس زوایاش اینجوریه یه مسلس دیدم میگم هر مسلسی اینجوریه، هر مربی اینجوریه خیلی. من عرض کلم هر محدودی که فرض بشه این ویژگی رو داره خب در قبال این محدود هم حتما باید یکی یک غیر محدود باشه که همه محدود ها رو و شکق سووا میشه تصویول نداره که وسط بین محدود و غیر محدود که بگی من تجراج نکردم شاید من برم بگردم یه دونه پیدا کنم که نه غیر محدوده نه محدوده نا دیگه. هر چی پیدا کنی محدوده و قاهران اگر محدودی هست که فل جمله هست خودم که هستم که مثل من عرض کنم که. صوفستی محض محضم خودم که دیگه شک ندارم که خود من محدودم پس قهران باید یه غیر محدودی باشه که من و افکار من و همثال زالب رو ایجاد کرده باشه با اون بیانی که دیگه مفصل تقدیم کردم عزیزون سوالی ندارن؟ بفرمید میکروفون بدید آقا میکروفون بدید آقا بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض عدف محضر استفاده کردیم سلامت باشید چند تا نکته به نظر میاد نکته اول در معنای بینهایت. اون بینهایتی که اورفا و ولاصفه میگن بینهایت وجودیه, وجودیه اگر دریا و جسم و مثال زدن صرفا یه مثاله بره. از این باب که شما تصور کنید که اگر جسمی بی باشه, باشه از جا... نوع خودش جایی برای غیر نمیذاره یعنی شما فرض کنید کل عالم رو یه جسمی گرفته دیگه جایی برای جسم باقی نمیمونه بالا رنگی میتونه روی اون جسم باشه بس روی اون سنخ خودشه یا اگر دریا رو مثال میزنم میگن شما فرض کنید کل عالم رو دریا گرفته دیگه جایی برای آب نمیمونه خب شما نمیتونید که بیایم یا ما نمیتونیم بیاییم از اون یه ویژگی دریا یا جسم که مادیت یا کمبودن بگیم که بی‌نهایتی‌ای که اینا گفتن بی‌نهایت کمیه یا از اساس بیاییم بگیم بی‌نهایت منحصره در بی‌نهایت کمیه ادعای اینا اینه که اگر خداوند وجود لا جایی برای وجود دیگه باقی نمیمونه ادعای اینه پس هرچی هست شعنه اونه مثل یه جسمی که کل عالم رو گرفته جایی برای جسم دیگه باقی نمیمونه خب، رنگی میتونه که باشه اینجا سوال ایجاد شد، وجود چیه که جایی برای غیر نمیذاره وجود اون چیزی که موجود به ذاته خب اگر خداوند موجود به ذاته و لامتناهی هست جایی برای موجود به ذات دیگه نمیذاره بقیه موجود بلعرزه به بیان دیگه به حیثیت تقییدیه موجودن حالا حیثیت تقییدی اقسام مختلف داره حالت نفادی داره حالت اندماجی داره حالت شعنی داره اون چیزی که اینا میگن اینه که اون موجودات ما سوا به حیثیت تقییدی شعنیه موجودن خب این میشه یک موجودیت بلعرز این نکته اول نکته دوم در مورد همین اقسام بی‌نهایت لا متناهی یا بینهایت اقسام مختلف داره بی‌نهایت ریاضی داریم، بی‌نهایت هندسی داریم، بی‌نهایت فلسفی هم داریم. ما نمی‌تونیم حکم احدل اقسام رو به اقسام دیگه بگیم قسیم این ضد هم، نقیزه هم. نمی‌تونیم بگیم خب بی‌نهایت ریاضی حکمش میاد بار میشه بر بی‌نهایت فلسفی. این هم نکته دوم. نکته سوم در مورد فرق تشکیک و وحدت شخصی وجوده. این دو درست ملاصد را با تحلیل این و یا مسئله تشکیک میرسه به وحدت شخصی تو فصل 25 جلده 2 اسوار تصریح میکنه که ما وقتی تحلیل میکنیم این و ربطو بل بله این نکته آخره وقتی تحلیلش میکنیم میرسیم به وحدت شخصی فرق اساسی که اینجا از خود صدرا هم تسریح میکنه اینه که در رابطه تشکیکی هر دو بالحقیقه موجودن یعنی هم وجود ربط میاد به ذات موجود میشه به ذات در برابر بلغیر ما یه بار به ذات در برابر بلعرز داریم یا بار در برابر بلغیر داریم درست. اون به ذاتی که اونجا گفتن در برابر بلغیر اینا نباید خلط بشه به نظر میومد که در فرمايشا شما اینا خلط میشن یعنی ما به ذات در برابر بلغیر رو باید تفکیک بدیم با به ذات مستشکر. در برابر بلعرز همین نکته خوب خیلی خیلی, خیلی ممنون یک و دو که تقریبا یکی بود نکته اول و دوم ببینید بله همینا میفرماند ها میگیم به کمی میگن وجودی می‌گیم اولاً نکته اول این که مگه چیزی که متکمه مگه وجود نداره مگه ادمیه خب اونم وجودیه دریا هم یک بینات وجودیه متوجه وجود جسمانی یعنی اینکه تایید نمیشه وجود جسمانی ولی وجود دیگه عدم که نیست که دریا که وجوده اولاً چرا این مثالا اصلا می‌زنید خب مثال که ربطی نداره که وجودی اصلا کمیتی این مثالا چرا ربطی داریم مثال ممثل چه ارتباطی داره برای چی اینو مطرح برای اینکه شما از وجود با سعه قائلید بلا درگاه لذاب میتونه خوب نشون بده چون هم سعه داره حالا سوال بعدی ما اینه میگه خدا بینایت وجودیه باید ما میگیم خدا وجودیه میگیم این مبتیم اما سوال اینه وجود بینهایت نهایت لا مکان و لازمان چرا نباید جا غیر بگذاره لا مکان با مکان دو وجود لا مکان وجود مکان وجود مکانمند به هیچ وجه نمیتواند عین وجود لا مکان باشین تنهاقزه لا مکان مکانو ترد میکنه. مکان رو ترک میکنه مکانمنندم لا مکان رو ترک میکنه همونج که فهمید قصدیم نقیزن با هم توی ستاق جمع نمیشن که لذا اگر اون وجود لا م... خدا وجوده بله ما هم میگیم خدا وجود غیر محدود نمیگیم میگیم عدم غیر محدوده وجود غیر محدوده وجود غیر محدود یعنی چی؟ یعنی اجزا نداره ابعز نداره شکل نداره زمان نداره مکان نداره خیلی خوب ماسه وله وجود محدود مقداری و ذو ابعازن خیلی خوب وجود ذو او ایجاد کرده نکته سوم او خودش را ایجاد کرده محاله غیر را ایجاد کرده حرف ماست خب میتونه وجود ذو ابعاز عین وجود خودش باشه به وجهی نمیشه چرا چون اگر او به وجهی ذو آز باشه مناط امکان حدوث در او هم جاری میشه این مطلب اولتون مطلب دومشون چی بود یعنی سومیشون دقیقا؟ قاغزم بود بلعرز به ذات میگیم آقا ما یک سال از ملاصاد داریم اینا هم اصطلاحات هیچ ارزشی هم نداره سال ما اینه تو عین ربط که قائلی یعنی واقعا قائلی که تو نظر اولت خداوند لامنشه یا هر جوری که تو میگی حقایقی رو حیرتن ایجاد کرده که غیر خودشان یا نه اگر گفت نه میگیم خب روحن معالان همون حرف عرفاست دیگه بازی با استلاحاته. اگر قائلی ایجاد کردی که متکلمی دیگه آقای ملاصدرا نیستی اینم روش ببینید، عورف نمیگن که جایی برای غیر نمیذاره مطلقاً میگه جایی برای غیر وجودی نمیذاره کسرات رو که منکر نیستم عورفا ببینید، دق... اصلا اون ارزی که داشتم فکر کنم دقت نشد این وجود ازخاری میکنم، این وجود وجودی یا خب ببینید، الان شما یا یه لحظه هست. اینو دقت کنید ببینید، موجود اهم از وجودی نکته اول موجود از وجوده یکی از اقسام موجود وجوده ما بسیاری از موجودات داریم که وجود نیست طبق حالت وجود حبار. بسیاری از موجودات داریم طبق تقریری که از اعتباریت مثلا دسته نه موجود نه معدوم وسط داره نه اصلا اینطور نیست نه اصلا اینطور نیست حالا اینجا واظم نکته است ببینید وجود وقتی اگر خدا وجود لا متناهیه جایی برای غیر نمیذاره یعنی چی یعنی هیچ کسراتی نیست خودتون که اولش گفتید که کسرات اون ممکن نیستن خب منظورشون اینه که جایی برای غیر از سنخ وجود نمیذاره. همچنین در مقابل جز... وجود میشه عدم دیگه. کی گفته اینو؟ در برابر وجود چیه؟ عدم عدم وجود یعنی اگر شما وجودو فرض کردید خود عدم اون وجود عدم میتونه یه چیزی موجود ما باشه. حرفو قبول دارین. یه داری. لحظه ببینید. حرف درستی. ببینید وجود یعنی چی؟ من سوال میپرسم از وجود یعنی چی؟ کجایی بوده؟ هستی. نه. اون مندای مصطریه. وجود هستی. نه خودشون میگن وجود یعنی چی؟ وجود یعنی موجود به ذات ونچس که بزات ممكن موجود درسته این نیست نه میگن که تارذ بیانی که در تمهید هست اینه میگه, چون وجود... عدم میگه چون وجود ذاتن تارذ عدمه ذاتن تارذ عدمه پس واجب به تمام نه اینجا شما بازم بذات در برابر بلغیر و بلعرز رو خلط کردید یعنی بذات یه بار در برابر بلغیر یه بار در برابر, در برابر بلعرز اینا رو باید حل کنیم ادعای این آقایون اصلا درست تابعين نمیشه ادعای اینا اینه که وجود یعنی موجود به ذات اگر خدا وجوده که وجوده یعنی موجود به ذاته درست شد حالا اگر نامتناهیه دیگر ما موجود به ذات نداریم همه موجود بلعرزن حالا آیا موجود نیستند آیا اگر ما غیرو نفی کردیم یعنی اجتماعی نقیزه اینه نه شما زود میان روی این که میگید خب مقابل وجود چیه ادمه ما هم قبول داریم مقابل وجود عدمه اما وجود رو باید بدونیم دقیقا یعنی چی بلد. وجود در اینجا که در اصالت وجود معنا شده خودتون بهتر از من میدونید نا دیگه وجود یعنی موجودیت بلعرز حالا ما اومدیم اگر اثبات کردیم که وجود موجودیت بلعرزه و وجودم نفی کردیم از ماصه یعنی تسلسل... یعنی اجتماع نقیزه نه اشماعین اگزه نیست که این یعنی موجودن اما نه به نحوه به بلکه به نحوه بلرست بسیار سال بعدی جناب شیخ سوال داشتم میکروفون تعداد بود به بله دو چی میشه؟ دوشه ای متباین مخلوق به خالق میخواد ان پیدا کنه، میخواد صفات رو معنا کنه، میخواد خالقش رو عبادت کنه. شما تنها راهتون اینه که بیاید از راه معرفت فطری که خود همون خالق در این مخلوق گذاشته وارد بشید یا نه؟ شما قائل به غیر معرفت فتری هم هستین. مثلا آیا شما برای اثبات صانع قائل به برهان عقلی هستین یا نه؟ با این تبینی که دارین؟ میگید ما اصلا برهان عقلی نداریم و فقط باید خدا را از طریق معرفت فطری ثابت کرد میخوام بینام این دریچه ای معرفتی بین دو شیعه متباین را شما چجوری میخوید تسمید؟ ببینید شما از اول جلسه بودید؟ بله ما یا خودمو کشتم بگم معرفت عقلی داریم برهان نقام میکردم چون ف... عالم حادثه پس محدثش بعد متباینه با این باشه دی خدا خودشو که ایجاد نکرده که غیر خودشو ایجاد کرده و خیلی ابتدا داره قهران ثانع و محدثش او دیگه ابتدا نداره او دیگه غنیه او دیگه سخن زمان نداره اتقالا این سؤال من ناظر به همین مسئله در جلسه شما بود که وقتی شما متباین میدونی. عقل من چجوری میتونه برای شیعه متباین برهان بیاره؟ هم برهانی اینکه گفتم دیگه اووردم دیگه شما برهان خط چه کنید بگه حد وسطش خرابه من عقل من میگوید منی که متجزیم مبتدع الوجودم نبودم وجودم این عقل میگه دیگه نبودم به وجود آمدم خود به خود که به وجود نیومدم قهران موجودی مرا چیه؟ ایجاد کرده خب اونی که ایجاد مرا کرده یا از سنخ منه شبیه منه یا نه حتەوسطی که نداری که اگر شبیه من باشه خب اونم یجری علیه الحركه وستون که اونم روایت خوندم که برهان عقلی بود اگر از سنخ من نیست پس او دیگه حرکت نداره زمان نداره مکان نداره وجودش وجود لازمان و لا مکانه و وجود لازمان و لا مکان اصلا این سوال راجبش مطرح نمیشه که جا برای غیر میذاره یا نمیگذاره حالا همین که شما برهان عقلی تونستید بیارید این نشون دهنده این نیست که پس شما یا حداقل خود اون موجود متوایین یه سری ارتباطی بین خودش و شما ایجاد کرده یعنی متوایین تا و تمام نیست. عقلم میگه که اگر شبیه من باشه مثل من باشه دیگه خالق من نیست. عقلم همین رو میگه دین. نباید شبیه من باشه. شما میگید یه جوری شباهت درستونه. خب چرا؟ کاری که بتونیم برهان عقلی بیاریم. برهان عقلی میگه اون خالق نباید شبیه باشه. عقل همین رو میگه. میگه این آیت تجزی شه، آیت حدوث درشه. پس این یه حادثه آیت چیه؟ آیت یک ذاتیه که غنیس و و ای رو ایجاد کرده. نه آیت یک ذاتی که اونم از جهت شبیه اینه. مگر رابطه تولیدی باشه البته با شبیه باشه که از دل خودش خارج بشه و هم سال زاده. بسخای می‌کنم خیلی استفاده کردم از那边 هندی عزیز. باز. من تصورم این هست که انسان از دیرباز تلاش کرد که خدا رو با خطکش چیزهایی که شبیهش رو دیده ترسیم بکنه لذا حضرت فرمود که توحید بین حد تعطیل و تشبیه نه تعتیلش بکن خدا رو نه بیا تشبیه کن چون انسان محدود به چیزهایی است که شبیهش رو دیده الان هیچ کدام از شما میتونید چیزی تخیل بکنید تصور تخیل نه تا اقلا تخیل کنید که تا الان شبیهش رو ندیده باشید غیر ممکنه حتی اجده های هزار سر رو که تصور بکنید یک اجده تصور کردید و هزار تا سر چی دید روی اجده ها؟ انسان محدود به است که شبیهش را دیده است بعد این انسان محدود بعد ما چه دیده امروزه حالا یک سال جیمز ویب داره یه سری عکس ها از عمق سیزده میلیارد سال نوری به ما میده که تازه میفهمیم که بابا گسترده تر از این حرف و چه چیزهایی ندیدیم و هنوز عمق اقیانوس ها برای ما علامت سؤال بزرگی و دریافت نکردیم و این فکر میکنم خیلی خنددار و مزهک باشه که این خدایی که خالق مایورا و ما لایوراست را همیشه بشر میخواست رو تختی تشریح بذاره و شروع کنه کالبوتش کافی کردن که علمش حصولیست یا است. که بعد نسبت جهل به جزئیات به خداوند بده یا وجودش چنین است یا چنان است که بعد بره به سنخیت و عینیت بخواد برسه فکر می کنم این بشر در جهل خودش دست و پا زد چون دست و پا زد خداوند هم بیاور رسول از فرستاد که عقل تو میگوید دست و پا در این مسئله نزن که تعبیر بیناهت رو نمیتونیم استفاده بکنیم و واقعا زیغ تعبیر انسان محدود چگونه میتواند به کنه ذات نامحدود حالا به تعبیر زیغ تعبیر پی ببره این دو دو تا چهارتاست اما خب معمولا عرض کردم ابتدای جلسم که دعوا همیشه بر سر توحید بوده شعالی نیست عزیزان؟ نزدیک به نماز ظهر میشیم، انشالله پذیرایی و خدمتتون هستیم انشالله بعد از ظهر ساعت ارزم به حضور شما که سیزده ساعت سبب از خواهی کنم ساعت پونزده خدمتون هستیم با ارائه بعدی صلواتی محضر حضرت و حجت تقدیم بفرم اللهم شلعلا الله محمد, الله الله الله. محمد الله. و عالم حضرت شما برمی باربونتون برم، خسته نباشید جا